سال 1944 هل سال وهار سال سرنوشت سال تاخت و تاز، سال سلاح ویوان و ویتو و سال تهاجم روسیه بود برغم رغم حملات هوایی مردم همچنان سرگرم زندگی خود بودند چهره شهرها دگرگون شده بود مونیخ به سرعت ساختمان های سبک روکوکو، باروک و نو هل به یک خرابه بزرگ تبدیل شده بود. زندگی ما مانند سایر پسرهای آن روزگار با رفتم به مدرسه و شرکت در جلسات سازمان جوانان هیت دلی میگذشت. در ماه اوت قرار بود من به دبیرستان محلی بروم. با آنکه در دوران حکومت راش سوم دانش آموزان برگاسیده به مدرسه آدولف فیتلر فرستاده می شدند. هنگامی که متن دعوتنامه به دست مادرم رسید به دیدار مدیر مدرسه رفت و به او گفت آقای مدیر دبیرستان شوهر من مرده پسر بزرگم در روسیه میجنگه و این پسرک تنها چیزی که برای من باقی مونده اگه اوس عادی بود تا این حد از فرستادنش نگران نمیشدم اما در حال حاضر که هیچ کس از فردای خودش خبر نداره دلم میخواد پسرم در کنار خودم باشه استیلز مدیر دبیرستان با حالتی خشک و جدی نگاهی به مادرم کرد و گفت خانم عزیز من واقعا برای شما متاسفم واقعا نگرانم اما نه برای موقعیت شما چون میلیون ها هم در مادر چون این شرایطی به سر میبرند. آیا درک نمیکنید که برای یک مادر آلمانی هیچ افتخاری بالاتر از این نیست که پسری داشته باشه که توان رهبری کردن داشته باشه و بتونه قابلیت و توانایی روحی خود را برای احراز چنین افتخاری نشان دهد؟ خانم محترم، ظاهرا شما فراموش کردید که پسرتون بیش از هر کس دیگه به ناسیونال سوسیالیست تعلق داره و باید تا آخرین لحظات زندگی به اون خدمت کنه. زندگی و آینده‌ای امیدبخش در انتظار پسر شماست. به نظر من مخالفت شما با رفتن او ممکنه عواقب به برای شما و خانوادهتون داشته باشه. به این ترتیب بود که در آزمون شرکت کردم. البته می توانستم کاری کنم که مردود شوم، اما چون دلبستگی خاصی به اونیفورم زیبایی که دانش آموزن مدرسی هیتلر می پوشیدند داشتم، نهایت سعی خودم را کردم که پذیرفته شوم. در ماه ژوئیه همه به مرخصی رفتیم. گروه ما برای گذراندن تعطیلات و طی دوره آموزش هواپیما های بیموتور به شهر زاپوت واقع در ایالات پومرانیا اعزام شد. البته ما فقط وظایف خدمه زمینی را بر عهده داشتیم زیرا هنوز برای پرواز خیلی جوان بودیم. واقعیتی که با توجه به تجربیت گذشته به هیچ وجه پذیرفتنی نبود. با وجود این، اردوگاه خیلی دوستشتنی بود و هوا هم از آن بهتر نمیشد. اردوگاه را خارج از زاپات و در فاصله نیم از ساحل بالتیک بر بستری از شنهای ساحلی ساخته بودیم. اردو از سه گروه تشکیل شده بود که هر گروه شامل 20 چادر بود. تمام روز را در دریا شنا می کردیم. آفتاب می گرفتیم و خودمان را برنزه می کردیم. و هواپیما های بی را با تیر کمان نشان بیرون چادر می نشستیم و هم با صدای پرسوز گیتار تصنیف آمیانه می خاندیم. گاه یک نفر داستانی را با صدای بلند می خاند. یا قطعه شعری را که از حفظ داشت دکلمه می کرد. قبل از اینکه برای خوابیدن به چادرها برویم، هر کس می یک داستان تخیلی بگوید. این درست همان تصوری بود که هر پسر بچه ای از اردو رفتن دارد. حدود دو هفته از اردو می یک روز اوایل بعد از ظهر که راحت و آرام روی ماسه ها نشسته بودیم، یک فولکس واگن ارتشی از روی ماسه های ساحلی به طرف اردوگاه ما آمد و جلوی اولین چادر توقف کرد. دو افسر اس اس از آن پیاده شدند. از جابلند شدم. پاشنه های پایم را که برهنه بودند به هم چسباندم و خبرداری دادم. یکی از آنها پرسید: فرمانده اردوگاه کجاست؟ مرد بلندقدی بود. که بازوی راستش را به گردن آویخته بود. الان یک نفر را میفرستند دنبالش جناب سروان. اولین درجه ای را که به ذهنم رسیده بود گفتم. زیرا همیشه در تشخیص درجه اس اس ها مشکل مشکل میشدم. آن روز بعد از ظهر من افسر نگهبان بودم. بنابر اینی که از بچه ها را که معاون افسر نگهبان بود فرستادم تا فرماندهی اردوگاه را که همراه با گروه ما برای روبه‌راه کردن هواپیماهای بی موتور گلایدر رفته بودند خبر کند. افسران اساس اس روی شنها نشسته بودند و استراحت می کردند. تولی نکشید که فرمانده اردوگاه رسید احترام نظامی به جا آورد و همراه آنها به چادر نگهبانی که علاوه بر دفتر اردوگاه مرکز کمک های اولیه و مخفیگاهی برای سیگار کشیدن بود رفت. احتمالا موضوع مهمی در جریان بود. زیرا آنها حدود یک ساعت و یک رب در چادر بودند. معلوم نبود که چرا آنجا را انتخاب کرده بودند؟ زیرا ما معمولا در طول روز به خاطر گرمای زیاد از رفتن به داخل چادرها خودداری میکردیم، مگر آنچه کسی هوس حمام ترکی میکرد. سرانجام افسران در حالی که عرق از صورتهای خاک حالودشان سرازیر بود از چادر بیرون آمدند. دستی بالا کردند، سوار ماشین شدند و در ابری از گرد و خاک از نظر دور شدند. فرمانده اردوگاه به من گفت، بچه رو جمع کن به گواماده بازدید دوباره پی کار فرستادم. کفش هایم را پوشیدم، پیراهن و دستمال گردنم را مرتب کردم و وقتی بچه ها از راه رسیدند، آنها را به شکل مربع مستطیل در سرادیف صفبندی کردم. حضور یاب که تمام شد، فرمانده هم رسید. آزاد. ها به سمت چادر نگهبانی پیش. هر شش نفر دنبال فرمانده به طرف چادر رفتیم و روی زمین نشستیم. فرمانده که پسری 16 ساله بود ولی به نظر ما مرد بزرگسالی می آمد، رو کرد به ما و این طور شروع به صحبت کرد: "شاید تعجب کنید که چرا در این وقت روز شما را اینجا جمع کردم. درد سرتان ندهم. موضوع اینه که باید فردا صبح اردوگار را ترک کنیم. دو نفر افسری که اومده بودند، خبر دادند که روسی حمله جدیدی را آغاز کرده است. به کلیه یگانهای سازمان جوانان هیتلری در این منطقه آماده باش دادند." که گوش به زنگ باشند تا برای ساختن سنگر و سایر موازه ادفاعی به پروس شرقی بروند. مقصد ما احتمالاً بی در نزدیکی الهنشتاین خواهد بود. این خبر پیش خودمان باشد. چیزی به برابطش ها نگید. اما اونها رو برای فردا صبح آماده کنید. اسم اون عملیات رو بوتر بروت می گذاریم. یعنی یک برش نانو کره. دستورات نظامی در همینجا تمام می شود. حالا خوب گوش کنید ما سه سال است که بهترین ایام را با هم بوده ایم و یکدیگر را خوب میشناسیم. بعضی از ما کمک خدمه ی زره هوایی بودیم من خیال ندارم مدت زیادی اینجا بمانم نامی به فرماندهی در مونیخ می نویسم و درخواست می کنم که ما را فوراً به مونیخ اعزام کنند در ضمن باید از این موقعیت حد اکثر استفاده را ببریم به محض اینکه به مقصد رسیدیم، از هیچ کوششی در انجام وظیفه دریغ نکنید در برخورد با این پروسی ها کمی ضرری ندارد ما انحصارا باواریایی بودیم و اگر سرپرستی سازمان جوانان هیتلری محلی را به عهده بگیریم دیگر غمی نخواهیم داشت خلاصه همه چیز بستگی به اوضاع و احوال و قابلیت خود ما دارد پس بجنبید پشتی ها را ببندید و به افراد جوخه اطلاع بدهید که فردا صبح حرکت میکنیم. توجیه شد به ترتیب از چادر بیرون آمدیم به جز دو نفر بقیه ای سرجوخه از جمله خود من از آنچه پیش آمده بود خوشحال بودیم. از چنگ بیزار شده بودم. شب اکتبر 1943 هنوز به وضوح در ذهن زند من زنده بود. وقتی به جوخه خود برگشتیم به بچه ها گفتم قرار است فردا حرکت کنیم. عملیات بوتربرات آغاز شد. وسایل من را جمع کردیم و کول بار من را بستیم من مانند دیگر هم قطارانم خوشبین نبودم در اسرع وقت به داخل کیسه خوابم رفتم و سعی کردم بخوابم. آرزو میکردم در خانه باشم. ناگهان این فکر به سرم زد که با رفتم به مدرسه هیتلر خود را گرفتار چه درد سری می کنم. اما هنوز هم امیدی داشتم که ممکن بود در امتحان مردود شوم. بیرون از چادرها همه خوشحال به نظر می رسیدند. بچه ها آواز میخواند و از فرط شادی فریاد میکشیدند. ساعت چهار و نیم صبح روز بعد شیپورچی آماده باش زد. چه وقت بیدار شدن بود؟ با این حال زیباترین ترین بامدادی بود که در زندگیم دیده بودم. آفتاب از ورای بالتیک طلو کرد و دریای آرام را به آینه سرخ فامی که می درخشید. بدر کرد. هوا خونک بود و باد ماسه ساحلی را به این صوبه آنسو می برد. چادرها را جمع کردیم و داخل کلو پشتی خود بستیم. فرمانده گروه دعای صبحگاه را خواند. خداوندا به خاطر شب آرام و خواب ای که به ما ارزانی داشته ای از تو سپاس گذاریم و از تو می که ما را از وسوسه هایی که در کمین ماست در امان نگاه داریم خداوندا پیشوای کبیر ما را که از سر مهر به مردم آلمان عطا کرده ای محفوظ بدار سربازان آلمانی را در زمین، دریا و هوا در هر کجا که هستند به سلامت دار خداوندا ما را پیروز گردان آمین. با حالتی شجاع آنها و مطمئن وارد شهر زاپد شدیم. حتی من هم کم کم شادتر و سرحالتر می شدم. سرود خواندن همیشه به آدم کمک می کند. خصوصا سرودهای دست جمعی که خواننده آن مشخص نمی شود. و در نتیجه به آدم احساس آرامش می دهد. خلقه خوی مردم پومرانیا کاملا با مردم آلمان فرق می کرد. در مونیخ یا شهرهای دیگر مردم به ندرت به ما توجه میکردند اما اینجا در لهستان مردم در خیابانها برای ما دست میزدند و از پنجره خانه خانهها به افتخار ما هورا می کشیدند و برای ما شیر و لیموناد میآوردند اگرچه من زیاد از شیر خوشم نمیآید چپ دو سه چهار چپ دو سه چهار چپ به چپ چپ قدم رو دست چپ خیابان اصلی که به ایستگاه راه آهن می شد پیچیدیم. افسری توی خیابان به ما سلام داد. در پیاده روها مردم می ایستادند و ما را که در حال راهپیمایی سرود جوانان هیتلری را می تماشا می کردند. به فرمان هیتلر به پیش می رویم تا جان در بدن داریم با پرچم آزادی و نان. مردم هورا میکشیدند و من از اینکه عضو سازمان جوانان هیتلری بودم غرق افتخار میشدم. به ایستگاه ره هاهم که رسیدیم ایستادیم. من و فرمانده ی گروه نزد رئیس ایستگاه که یکی ای از افسران پشت جبهه بود رفتیم. پشت میزش نشسته بود و دکمه های بلوز نظامیش باز بود. سیگار برگ بزرگی زیر لب داشت و از پنجره دخترهای یگان امداد را دید میزد. سلام نظامی دادیم. در حالی که چشم از دخترها بر نمی داشت پرسید با کی کار دارید فرمانده گروه گفت ما قرار است به افرادی که برای اینشتاین می‌روند بپیوندیم سروان رو کرد به ما و گفت برگ چه دارید صورتش سرخ و چشمایش قرمز و خسته بود به ما گفتن که از شما بگیریم کی چنین حرفی زد دو تا افسر اس, اس از یگان کرلند که دیروز به اردوگاه ما آمده بودند. باز اخراف نگویید. من برای کودکستانی ها وقت ندارم. بسیار خوب جناب سروان. پس لطفا کمک کنید به مونیخ برگردیم. پس خیال دارید به مونیخ برگردید. من هم بدم نمی آید به مونیخ برگردم. چه خوب شد جناب سروان. اگر برگم اموریت ما به آلنشتاین را می خیلی ممنون می شدیم. نگاه کنید بچهها سر من خیلی شلوغه. ایسکا پر است از گروههایی که از این طرف به آن طرف می روند. امکان ندارد به یک مشک بچه اجازه بدهم هر جا دلشان میخواهد بروند. انگار که کار دیگری ندارید. مگر تابلای رو چه بالای در ورودی بود نخواندید خیر جناب سروان ما هنوز به آنجا نرسیدیم. ها در میدان جلوی ایسکا منتظر ما هستند. پس بگذارید به شما بگویم. روی تابلو با خط قرمز درشت نوشته شده چرخ ها برای پیروزی به گردش در می آیند. و من از شما می خوام که این نوشته یادتون باشه. الان خصوص همین حالا. بسیار خوب جناب سروان. پس لازم است درخواستم را تکرار کنم. من و افرادم را به شهر مونیخ برگردانید. حتما بعدشم از من می بفرستمتون بفرستم ما که اگه دست از سرم بر ندارید حتما این کارو می کنم <تص> ما روی درخواست ما پافشاری کردیم. به شما گفتم برید بیرون. صورتش از خشم کبود شده بود. جناب سروان، به ما دستور دادن برگ مأموریتمان را از فرماندهی راه آهن زاپوت بگیریم و به همین خاطر هم مزاحم شما شدیم. اونجا میخواهید چه غلطی بکنید؟ قرار است به میشوشپور برویم. بعدش؟ قرار افراد ما را به یکی از گردانهای مهندسی سازمان جوانان هیتلری ببرند تا در ساختن خطوط دفاعی کمک کنیم سروان بر و بر به ما نگاه کرد ناباوری از چهرهش نمایان بود پوس خندی زد و ناگهان زد زیر خنده خندش اوج گرفت و به نعره بدل شد مدتی طول کشید حالش جا آمد وقتی گفتید امریهاتون از اس اس گرفتید باید حدس می زدم که همه ی حرفاتون چرنده. نه جانم بهتره که برگردید پیش مامان جونتون ما می جناب سروان و مسئولیتش با شماست کدوم گروه میرید؟ رید؟ جناب سروان سروان چند تا فرم فرمانده گروه ما که پر کند و بعد آنها را امضا کرد موقع فرم، فرمها قیافه معمول یک افسر آلمانی را به خود گرفت قیافه خشک و بیروه تا سه ساعت دیگه قطاری از راه میرسه ولی هاش برای ارتش آلمان رزرو شده. بچه هنوز در همان جایی که آنها را ترک کرده بودیم ایستاده بودند. را بیفتید به طرف سکوی راه آهن ولی بی سر و صدا. در ایستگاه جای سوزن انداختن نبود. اینجا و آنجا افراد کنار هم ایستاده بودند. ادهی هم با آنیفورم های چرک مرده روی زمین دراز کشیده بودند. تو در کنارشان و کوله پشتی ها زیر سرشان فرصت را قنیمت شمرده مشغول چرت زدن بودند صورت تکیده و اصلاح نشده ی آنها پر از هایی بود که حتی موقعی خواب هم صاف نمیشد اینها مردانی بودند که در جنگ شرکت کرده بودند پرسه زدن در سالن انتظار و دراز کشیدن در کف ات از عباحت این جماعت نظامی که دنیا را به لرزه درآورده بودند میگاست اما نشان از فردیت مشترک آنها فردیت آدم های خسته و بهد زده و خشن داشت در چهرههایی که پشت میزها مشغول ورق بازی بودند یا آبجو نوشیدند نشانی از اعتماد به نفسی که چهار سال پیروزی نصیب آنها کرده بود دیده نمیشد صد و سی دو سال پیش ارتش دیگری خسته و وامانده از همین مسیر برمیگشت محیط و ها عوض شده بود اما افراد درست همانطور خسته و واخورده بودند وقتی روی سکو رسیدیم سرگردی که از آنجا میگذشت ایستاد و از من پرسید: پسرم به طرف شرق میروی؟ به ما گفتن سلاح جدیدی در راه است. شما که از گروه ویوان نیستید، نه ما از گروه ویتو هستیم. سرگرد پوس زد و یک بسته شکلات به من داد. حتی سکوها هم پر از آدم بود. آدمهای واماندهایی که یا خواب بودند. یا حرف می زدند و یا ناسزا می گفتند. گویی منتظر چیزی بودند. چیزی نامعلوم. برای آنها زمان وجود خارجی نداشت. تا وقتی که می توانستن منتظر چیزی باشند، احساس خوشحالی می کردند. هنگام تعویض قطار زمانی به بتالت می گذشت. اما اما چنانچه قطار بعدی که باید آنها را به مقصد برساند تأخیر می کرد، سربازان اعتراضی نداشتند. زمان حال وهمی بیش نبود اما فردا هفته بعد ماه بعد و سال بعد را میشد به حساب آورد اما از کجا معلوم که سال بعد آنها نیز به سرنوشت صدها انسانی که دست جمعی ته گودال بزرگی زیر خروارها آهک مدفون شده بودند گرفتار نشوند چه بسا فردا دیگر زنده نباشند عاری واقعیت چنین چیزی بود دو نظمی با قدم های تند و کوتا از تکو پایین می رفتند. هایشان تمیز و کرده و چکمه هایشان واک زده بود. هر دوی آنها تپانچه سنگین کالیبر هشت به کمر بسته بودند. از لوح فلزی روی سینه آنها که از زنجیر نازکی آویخته بود برمیآمد آمد که دشبان باشند. خود آنها زیر شعاع آفتاب بیرمقی که توانسته بود از هوای آلوده ایستگاه به پایین نفوذ کند، برق میزد سربازان پشت سر دشبان ها هو می کردند و سوت میکشیدند اما آنها بیاعتنا به راه خود ادامه میدادند این چیزها برای ما بچهها خیلی عجیب بود اینجور اتفاقات به قدری زیاد بود که ما فقط آنها را به حافظه میسپردیم تا به موقع آنها را به یاد بیاوریم البته به شرطی که چنین موقعیتی پیش می آمد صدای سوتی به گوش رسید و قطار بهداری وارد ایستگاه شد های سفید و تمیز آن با علامت صلیب سرخ، تصاد دلپذیری با حالا هوای عبوس ایستگاه به وجود آورد. راه را باز کنید! راه را باز کنید! آنهایی که برانکار حمل میکردند به طرف سکو دویدند. ما کیسه خوابهای ما را از زمین برداشتیم و تا حد امکان راه را باز کردیم. قطار جلو آمد. شکافهای باریک و کوچکی از پنجرهای تاریک باز شد و چشمانی از پشت آن به بیرون نگریست. آنها در وطن خود بودند اگر چه بسیاری از آنها دیگر زنده نبودند که این لحظه را ببینند از پشت درها فریادهایی به گوش می رسید. فریادهایی از شادی و فریادهایی از درد وقتی درها باز شد من به خود لرزیدم. برانکارها را با زخمیهایی که روی آنها بود بلند میکردند و به طرف آمبولانسهایی که به تعداد زیاد بیرون ایسگاه منتظر ایستاده بودند میبردند بعضی از مجروحان امیدوار بعضی خونسرد و بعضی هم مرده بودند یکی از آنها سرباز بلنقدی بود که پاهای برهنش از انتهای برانکار بیرون زده بود سرباز پرستار به صورت زرد چشمان بی و دهان باز و چانه فرو افتاده او نگاه کرد و با بی قیدی گفت مرده و ملافه را رو روی او کشید در حالی که پنجهایش پیدا بود او را بیرون بردند پس از رفتن قطار بهداری رفت آمد خیلی زیاد شد. قطارها چپار چپ و راست می آمدند. سربازان نامرتب خسته و فرسوده دست دسته از راه می رسیدند. بعضی واگان ها تانک تایگر پانزر را که لوله ی ترکیده، شنی کنده شده بود و سراخ های بزرگی در بدن آنها دیده میشد حمل می کردند. قطارهای دیگری از قرب سربازان جوان را با چهره های عبوس و چشمان افسرده با خود میآورد. بعضی قطارها حتی تانک اسلحه و کامیان با خود حمل می کردند. از افتخارات قرو که در جبه تبلیغ می کردند اثری نبود شعارهای پرتم تراغ مرد در راه پیشوا و میهن رنگ باخته بود برای اولین بار در این شهر مرزی احساس کردم که سربازان وحشت کردند آنها قهرمانانی بودند که قربانی زمان و آزا و احوال حاکم بران شده بودند تقریبا از رسیدن قطار ناامید شده بودیم که ناگاه قطار از راه رسید. با تعجب دیدیم که قطار پر از بحچه سازمان جوانان ایدلری است. هیچ کدام از آنها نمیدانستند به کجا می روند. عملیات آنها نیز درست ماننده عملیات ما مسخره بود. اناوین نظیر از ردیش، لایسریک و بالاخره عملیات کروسادر. بچهها گاه و بیگاه پرسش های خطرناکی را مطرح می کردند. تا آنجا که مجبور شدیم توجه آنها را به پستری جلب کنیم که در هر کوپ نصب شده بود و سایه مردی را نشان میداد که در زیر آن نوشته شده بود دیوار موش دارد موش گوش دارد. وقتی به رسیدیم کمی از ظهر گذشته بود. شهر به طور کامل حالت شهری خود را از دست داده بود خیابانها ها کاملا تحت کنترل ارتش قرار داشت. انبوه خودروهای نظامی تمام خیابان هایی را که به میدان جلوی راه آهن منتهی میشد، مسدود کرده بودند و یکی یکی با تعنی از میدان گذشته و از طریق جاده اصلی به مرکز شهر میرفتند. رفتند. وقت آن رسیده بود که به بچه ها بگوییم که حقیقتا چه کاری در پیش داریم. برخلاف انتظار، وقتی فرمانده گروه به بچه ها گفت باید سنگر و مواضع دفاعی حفر کنند، بیپروا هورا کشیدند آنها آماده بودند که همه چیز را به شوخی بگیرند از آلنشتاین تا بیشوفسبرگ قطارها منحصرا در اختیار ارتش بود آنها تانک ها توپ ها و خدمه آنها را جابجا جا می کردند و این بدان معنی بود که ما باید این فاصله را پیاده طی می کردیم در حالی که با هزار جان کندن پیش می رفتیم خورشید می میتابید و ما را می میسوزاند زیر بار کول پشتی های سنگین خم شده بودیم و قطرات عرق و خاک قرمز پروس شرقی روی گونه هامان مخلوط شده و پوشش نازک و تیرهای به جا گذاشته بود. یک کامیون ارتشی مقابل ما ایستاد و راننده آن پرسید کجا می روید. مقصد ما و او یکی بود. به ما گفت که اجازه ندارد کسی را سوار کند ولی می تواند کود پشتی ها را به قرارگاه فرماندهی بیشوفسبورگ تحویل دهد. طبعاً پیشنهاد قابل قبولی بود. پشتی های خود را بار کامیون کردیم. کامیون راه افتاد و به زودی در ستون بی انتهای خود رو حگرتشی که زنجیروار از سمت راست جاده عبور می کردند، نابدید شد. بخشی از هومه شهر با دریاچه های کوچک و مردابی، مزارع زرت و جنگل های کاجش جدا زیبا بود، اما این زیبایی در همه جای آلمان و بسیاری از نقاط جهان تضاد موجود در جهان را در حالی که کشاورزان مشغول چیدن ذرت بودند سربازان خسته پیاده نظام در مزار سرسف می‌نشستند مینشستند و تفنگ و با مسلسلهایشان را در کنار داصد قانی میگذاشتند که دمی به استراحت میگذراند یا زنانی که در قیاب شوهران خود در مزار کار میکردند و گهگاه برای رفع خستگی دست از کار میکشیدند ستون زندانیان جنگی فرانسوی سوار هایی که به وسیله گاف ها کشیده میشد با ترافیک ارتشی مخلوط شده بود. آنها برای کار در مزرعه، برداشت گندم و علوف اعزام شده بودند. این منظره جنگ نبود، اما منظره صلح هم نبود، و نشان از آرامش قبل از طوفان و حادثهی در شرف وقوع داشت. ما همچنان پیش می رفتیم. در تقاطع جاده شیون قازها و قدقود مرخا در هم می بود. ملائم جاده ها را برداشته بودند و رفتا آمد به وسیله دژبانهایی هایی که تلاش مختصر و نتیجه برای کنترل و می کردند اداره می شد. بچه ها جلوی خانه های هورا می کشیدند و افسران و درجه داران فریاد می زدند. و مرخ سر صدا می کردند و سربازان عرق می ریختند و پیش می رفتند. گروه ما به سرعت جلو می رفت و بالاخره شپنگام به بیشوفسبورگ رسید. ما سراغ دفتر فرماندهی را گرفتیم و وقتی آنجا را پیدا کردیم، با منظره عجیبی روبرو شدیم. درست وسط پیاده رو در کنار مقر فرماندهی، کوله‌پشتی‌هایمان روی هم ریخته بود و مرخ را برای آن می پریدند و نوک میزدند. در حالی که دو محافظ با تفنگ و سرنیزه آنجا ایستاده بودند، سگ کوچک سیاه و سفیدی در فاصله میان دیوار خانه و کوله‌پشتی ایستاد و به رفع نیاز طبیعی و گریزناپذیر خود پرداخت. از نگهبان‌ها به خاطر محافظت از اساسمان تشکر کردیم. و خواستیم وسایلمان را برداریم که یکی از آنها مرا به عقب هل داد و گفت: حماقت نکن، بنداز زمین. ما اینجا وقت شوخی کردن نداریم. ماجرا را شرح دادیم، اما آنها از جای خود تکان نخوردند. گفتند: این وسایل متعلق به پرسنل هنگ 352 پیاده است. گفتم: چه کسی این حرفا به شما گفته؟ چند ساعت قبل کامیونی به اینجا اومد و رانندهش از فرمانده خواست چند نگهبان برای حفاظت از این وسایل که متعلق به لشکر 352 پیاده است بگذاره ما نتوانستیم جلوی خنده ام را بگیریم این راننده دستکم از هوش فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است جرد یکی از افراد جوخه من کوله خودش را که درست روی همه کوله ها بود شناخت از این رو از نگهبان خواست که کوله پشتی را باز کند و محتویات کیف و مشخصات خودش را که بر روی اتیکتی در کیف قرار داشت ذکر کند. به این ترتیب مسئله حل شد. در همین موقع فرمانده گروه ما به دیدن افسر فرمانده رفت. وقتی از دفتر فرمانده بیرون آمد، به یکی از نگهبانان گفت که باید ما را به نقطه‌ای در 3 کیلومتری شرق بیشوفسبرگ ببرد. منظره بسیار زیبایی بود. کنار جویبار کوچکی که برای چادر زدن جان می‌داد. چادر زدیم. و که خورشید آخرین پرتو خود را بر مزاره میافکند شام مختصری خوردیم و از فرط خستگی بیان که سرودی بخوانیم به خواب رفتیم نیمه شب و سر و صدایی که از دور شنیده میشد هراسان از خواب پریدم و جرد را که در کنارم خوابیده بود تکان دادم خواب آلود پرسید چه خبر شده صدا را میشنوی كدوم صدا گوش کن؟ صدا چنان بود که انگار ستون بی از کامیان های سنگین از روی پل فلسی عبور می کردند. از چادر بیرون آمدیم، شب خنکی بود و قطرات شبنم زیر نور ملایم ماه برق می زد. نگهبان پتویی به دور خود پیچیده و کنار آتش نشسته بود. پرسید. میبینید؟ در سمت شرق، افق به شکل خط سرخ طویلی در آمده بود. که گهگاه آتش توپ خانه را قطع می کرد. در بعضی نقاط چند ثانیه ای کمرنگ و گهگاه به کلی محو می شد. لحظاتی بعد شلهاهایی که عملاً این خط را ساخته بودند برمیگشتند و پیوستگی خط قرمز دوباره برقرار می شد. جرد گفت: امیدوارم هرگز به اینجا نرسند. پدرم که در روسیه است می گوید اگر روزی پای روسا به آلمان برسه بهتر خودمون رو بکشیم چون هر کاری بگی از اونها ساخته است. من گفتم اونا هرگز به اینجا نخواهند رسید تا رو مارشون میکنیم اما در همان حال آرزو میکردم هرچه زودتر به خانه برگردم نگهبان که از بچه های جوخه دوم بود گفت منم هم همینطور اگه به مادرم بگم که ما رو فرستاده بودن اینجا سنگر بکنیم یک کتک مفصل میخورم اون هرگز حرف منو باور نخواهد کرد افکار زد و نقیز دوباره به سرم زد ما از یک طرف پسر بچهای بودیم که مثل مردان جوان با ما رفتار میکردند و گاهی همان انتظارات را از ما داشتند و از طرفی دیگر کوچولو بودیم که پس از یک بعد از ظهر کامل که حسابی مشق نظامی کرده بودیم با صفکنندگی و ترس به خانه میرفتیم. چون معلم از درس و مشق ما به پدر مادرها ما شکایت کرده بود.